به نام خدا یه جمله مدیریتی رو بریم چند جمله مدیریتی اینکه رفرش بشه بعد بخص شروع میکنیم تیم یعنی together everyone achieve تیم یعنی together, یعنی together این معنی تیمه خب همه با هم به نتالجا بالتری میرسیم نردمان موفقیت. نردوانم من فقیت این افعال رو کنیم I WON'T انجام نخواهم داد. چون پله اول خواهید بود I CAN'T من نمیتونم I DON'T KNOW HOW TO پله 3 من نمیدونم چه بونه I WISH I COULD دارم که بتونم oh, What is it? چیه? I THINK I MIGHT من فکر بکنم که شاید داشه I MIGHT من شاید بتونم I THINK I CAN فکر بکنم که من میتونم I CAN من میتونم I will انجام خواهم داد. I deep انجام دادم. ما همیشه تو بحث کار خب؟ اگه کاری در سواد ما انجام بدیم اگر میخواییم موفق باشیم مرحله آخر این موفقیت ها نگاه بکنیم یعنی باید I will من انجام خواهم داد. من این کار رو انجام خواهم داد. و مسلماً وقتی شما این پس رو تو سواد داشته باشیم و این حس در سازمان به پرسونل دیگر تون انتقال بدید پرسنل دیگر هم توانند اون کار رو انجام بدن خیلقا شما هست که یه داستانی رو با هم بخونیم فرار بزرگ دیدی دیدید فیلمشو فیلم فرار بزرگ هم. خب تیم زنی جهانی دوم در یکی از زندان‌های آلمانی اسرای متفقین تصمیم به فرار از زندان گرفتند و نام آن را فرار بزرگ گذاشتند. نه به دلیل اینکه که کسی آن کار را انجام نداده بود بلکه به این دلیل که طی این فرار قرار بود حد اقل 250 نفر یک شبه فرار کنند و لازمه تحقیق چنین هدف بزرگ همکاری بسیار عالی زندانیان با یکدیگر بود برای این کار نیاز به مسائل زیاده بود که جوابهی آنها به تنهایی کار سپاهی عظیم بود زندانیان نیاز به لباس عادی برای تمام اسرا شناسنامه آلمانی برای اسرایی که زبان آلمانی یاد داشتند آب و غذا برای دیگر اسرا که زبان آلمانی یاد نداشتند داشتند برای تحکم این فرار زندانیان نیاز به چهار هزار تخت چوب هزار سی و بسته چوبی هزار هفتد پتو پنجا دو میز بلند و غیره داشتند در شب 24 مارس هزار پس از یک سال کار و همکاری سطح ها در آخر 220 نفر آماده فرار شدند طبق نقشه قرار هر دقیقه یک یا دو نفر از طریق تونلی که از زیر زندان تا جنگل کنده بودن خارج شدند اما به محض خارج شدن اولین زندانی متبطه شدن که بدود 15 متر کمتر کردن و با این در هر ساعت دوازده نفر به زحمت می خود را به جنگل برسانند. قبل متوجه شدن آلمان ها حدود هشتاد نفر فرار کردند که هشتاد سه نفر از آنها دوباره دستگیر شدند و چره یک نفر از آنها به دستور هیتلر اعدام شدند و ته این فرار آلمان آماده باش نظامی در سراسر سر آلمان اعلام کرد درسته که ته این فرار تنها سه نفر به آزادی رسیدند. اما مسئله اصلی همکاری بی‌نظیر 600 اسیر در هر روز ساعت و دقیقه به مدت یک سال بوده است. رمز موفقیت سازمان‌ها یا هماهنگی یا همکاری. زمانی یک سازمان میتونه واقعا فلسفه تیمبرگ رو در سازمانش تمرین بکنه که حس همکاری بین همه افراد و حس مشارکت پذیری بین همه افراد وجود داشته باشد. وقتی ما صحبت از مشارکت می‌کنیم یک بازیکن مشارکت پذیر یا یک نیروی انسانی مشارکت پذیر یعنی اینکه همتیمی‌هایش را به عنوان شریک کاری ببینیم نه رقیب کاری پس مدیر در این حالت تو سازمانش این حس را باید تلقیم بکنه که همه شما به کل ما را شریک هستی، نه رقیب و حس رقابت رو تو سازمان از بین ببره حس رقابت در سازمان از یک حدی که افساشش پیدا بکنه تا یک خوبه ولی از یه حدی که افساشش پیدا کنه سم کشنده میشه برای سازمان خب میگم از یه حدی تا یه حدی خوبه از یک حدی که افساشش پیدا کنه سم کشنده میشه حامی تیم هایش باشه نبرد گمانه آنها نگرش بد در سازمان سمت کشنده است من شه میگم نیروی انسان بر اساس تخصص و مهارتش استخدام میشه ولی بر اساس رفتار سازمانیش اخراج میشه هیچ مدیری به خاطر نداشتن تخصص و مهارت نیروی رو اخراج نمیکنه به خاطر نگرانیشه که معمولا مدیران میان و نسبت به ترمینیت کردن یا اخراج نیروی انسانی اقدام میکنن نگرش مثبت مثبت فکر کردن خوب به معروف ما در سازمان‌ها که یه بحثی را داریم تحت منشور اخلاقی خب؟ ما میگیم آقا پشتستان هم میگه صحبت نکنیم بدگویی نکنید نسبت به سازمان بدبین نباشید اینها مهمه اینا رو حس مشارکت پذیریه پرسنان در سطح سازمان ترسی میذاره بود رو تیم متمرکز باشن نه رو خودش از طریق توان خود پیروزی ها را به دست آورن برای بالا بردن مشارکت پذیری ما در سطح سازمان باید کانسپت وین وین داشته باشید هم مدیر، هم نیروی انسانی مدیران باید این مسئله مد... متن نظرشون باشه وین وین، اگه نیروی انسانی یک چیزا قراره ببره مزرم کنم، سازمان مراره یه چیز رو ببره، نیروی انسانی هم باید ببره کانسپت وین وین، یعنی برنده برنده یعنی هرگه ی موبال افراد تو سازمان برنده باشن. اینجا ما میگیم اصول اخلاقی رو بعد در سطح سازبان رعایت بکنیم به شبان تحصیل میدار رو بحث مشارکت بزید مکمل دیگران باشیم مکمل بودن دقت بکنیم نیروهای های انسانی در سطح سازبان نقاط قوت و نقاط ضعف دارن هیچ نیروی انسانی نیست که سر درستان مصبت باشه همه یه نقاط ضرفی دارن ما بحث تکمین رو در سطح سازبان باید من ببین اگه سه نفر توی واحد دارن کار میکنن اینو باید مد نظرمون باشه این سه نفر هر کدوم میسند نقاط ضعفی دارن ولی نقطه بسیار باه، بعد همدیگر رو تکمیل کنن اگه توی واحد یه فرد درون ریسداری یه فرد برون ریس هم بعد کنارش باشه میدونی چی میخوام بگم اگر یک فرد حساس داری تو واحد یه فرد غیر حساس هم بعد در کنارش باشه که اینا بتونن همدیگه رو تکمیل بکنن این بحث قحشنگار رو بخش مشارکت پذیری تاثیر میذاره خودتان رو نادیده بگیرید مشارکت پذیری ارتباط مستقیمی با سازمان داره پرسونه بعد خودتش رو نادیده بگیرن و سازمان رو ببینن یا به عبارت دیگه سازمانی فکر کنن پرسونه چشونی میتونن سازمانی فکر کنن؟ یه روش خیلی راحت چشمنداز و رسالت سازمان چشمنداز و رسالت سازمان که من جلسه اول خدمتتون گفتم تو کل سازمان باید درک بشه اعتقاد بشه میدونی یه شعار بشه تو ذهن همه بشینه بحث مشارکت اگر ما بخوایم داشته باشیم باید چشم انداز و رسالت که من جلسه هر وقت تو ذهن همه بشینه وقتی این حالت به وجود میاد بله ما میتونیم بگیم بله پرسنل خودشونو نادیده دارن میگیرن و سازمانی دارن فکر خب به نام خدا و به نام دگرگون کننده حالها یه استارتی بود یه ایتروڈاکشنی بود وارد بحثمون بشیم سوالی هست سوالی هست خب بریم وارد بحثمون بشیم ما جلسه گذشته بحث برنامه ریزی رو در سطح سازمان استارت زدیم درسته؟ برنامه ریزی گفتیم برنامه یعنی چی؟ یعنی حرکت از وزن موجود به سمت وزن من من خدمت شما از کرا جلسی گذاشته اگر شما بخوایی حرکت رو از وزن موجود به سمت وزن مطلوب نیازمند تحبیری، درسته؟ یعنی وزنیت سازمان رو باید تحمیل بکنید خب؟ تحمیل وضعیت سازمان این چه که الان من برام بهتون میگم فوق‌العاده مهمه ما برای تحلیل یک سازمان یعنی بدونی وضعیت سازمان خوبه، بده، ضعیفه، متوسطه ابزاری رو معرفی کردیم به نام SWOT درسته؟ SWOT analysis SWOT analysis یعنی تحلیل محیط بیرونی و درونی سازمان خب؟ تحلیل محیط بیرونی و درونی سازمان جهت اقتلالتون این ابزار آی ای هم بهش میگن آی ای انالیسیس خب تحلیل آی ای آی ای یعنی اکسترنال درون بیرون تحلیل درون و بیرون سازمان گفتم تحلیل سوات انالیسیس دو تا خروجی به شما میده درست یا نه او خب و و اس دبليو اوتی یعنی مشخص کردن فرصت ها و تهدیدات سازمان یعنی عواملی که در بیرون یک سازمان قرار داره که تحت کنترل مدیر هم. نیستش خب و اس دبليو عوامل درون سازمان نقاط قوت و ضعف استرنگ و ویکنس خب که تحت کنترل مدیر تا حد خیلی زیادی هستش، درسته شمسید. ما برای مشخص کردن اوتی گفتم چند عامل متمرکز بشید 6 تا یازده عامل درست میگم برم؟ ها یازح عامل 11 عامل چی بودش سیاسی, سیاسی؟ من دیگه فارسی نمی نویسم اقتصادی فرهنگ. فرهنگی تکنولوژی تکنولوژی جغرافیا جمعیت شناسی. شناسی این شیشتایی که ما هفته گذشته بهتون گفتم در محیط عمومی بحث میشه محیط عمومی چه محیطیه عواملی در محیط عمومی قرار دارد این عواملی که در محیط عمومی قرار دارن رو همه سازمان‌ها تاثیر خودشونو می‌ذارن رو همه سازمان‌ها عوامل اقتصادی سیاسی تکنولوژیکی بعدی رو حاله‌ی سازمان‌ها تاثیر می‌ذاره. خب، پنج عاملم من به تو معرفی کردم که در مدیریت سرعت بحث میشه. بگید تعیین کنندگان مشترینو. خوب؟ رقبا، مشتریان، رقبا، حجم رقبا. حجم رقبا، موانع ورود به بازار. موانع ورود به بازار کالا خدمات جایی بازیم خب یازده عامل که این در حقیقت در محیط صنعتی محیط سنتی چه محیط؟ این عوامل صنعت سنت متفاوته ممکن تو سنتی که شما کار میکنی؟ نقشه تامین کننده با سنتی که من دارم کار میکنم متفاوت باشه نقشه مشتری تو سنتی شما داری کار میکنید با سنتی که من دارم کار میکنم متفاوت باشه خب؟ S.W. نقاطه Over, Z. Straight, Weakness گفتم رو محیط داخل سازمان متمرکز میشید چه محیطی؟ مدیریت. بازاریابی مدیریت, مدیریت. مدیریت. مدیریت. مدیریت. تولید مالی مالی آیتی، تحقیق و شش شیش، رو من که عنوان نمونه بهتون معرفی کردم که برای در حقیقت، در نظر گرفتن استریت و weakness، برای نقاط قوت و زرف میتونه در نظر دیدیم متوجه هستی؟ حالا، ما میخواهیم استرمی OT انالیسیز یا سوال انالیسیز رو برای سازمان انجام بریم به چه صورت بر انجام دیم بچے۔ امروزه من یادداشت کنید مواردو. این مورد که من دارم میگم بسیار بسیار بسیار مهمه. مهم استا بسیار بسیار بسیار مهمه. خب انجام سوال دیگه سوال الان هم انجام بدید. می‌نین؟ ها؟ دارید می‌بینید نظریه رو؟ هزار نورش کنه استاد. نورش در کفیه، الان می‌بینید؟ ها. من دو تا شیت به شما معرفی می‌کنم، دو تا شیت. کاروند. اینو یادداشت کنید تو دفترت. البته ما تو درس مدیریات استراتژیک اینو قشنگ بازش میکنیم من این کلیات همینش تو درس مدیریت میگم که یه ذهنیت دوستان داشته چه سوال خیلی مهمه خب و تو درس مدیریت استراتژیک قشنگ قضیه رو باز میکنه من دو تا کاربرگ اینجا دارم یکی تحلیل محیط بیرونی کاربرگ شماره یک و کاربرگ شماره دو تحلیل محیط داخلی تحلیل محیط بیرونی برای چیه برای فرصت و تقدیداته درست یادم؟ فرصت و تقدیداته و تحبیل محیط داخلی برای چیه؟ برای <تصفيق> نقاط زفر و قفت کنید من نمونه تو سازمان خودم براتون انجام میدم همین الان که بقید من را پرکتیکلی دستتون بیاد خیلی عملیاتی. ما شرکتمون تولید کننده توربین، خوم و کمپرسوره در صنعت نفت گاز و پترشی اوکی؟ من اول میخوام تحلیل محیط بیرونی رو برای شرکت خودم انجام بدم. ببینید شما چه فرصت ها و تهدیداتی ما داریم. نکته اول نکته اول فرصت و تهدیدو که برای سازمانتون میخواد بریسید، حد اکثر پنج فرصد و حد اکثر پنج تحدید رو بد بنیمسید نه بیشتر،, نه بیشتر. نه بیشتر،, نه بیشتر. پنج تا چار پنج تا برد رب کمتر نتونه باشه، بیشتر نباید باشه حد اکثر پنج درصد حد اکثر پنج تقدید. بیشتر نباید باشه خب؟ حالا، من تو سازمان خودم برید، دو نیازده آمل من یه ریویو میکنم فرصد و تحدیدان تا من سازمان خودم این ما از نظر سیاسی، خب، قوانین دولتی، مغلکتی، متوجه است. الان فرصتی برای هست تحت عنوان تحریم متوجه است. پس تحریم یک فرصت برای سازمان ما شو. خب، من توضیح ده تحریم فرصت برای ما چرا؟ شود سالات نفت و گاز و پتروشیمی تجهیزات تجهیزات های تکیه و در انحصار چند شرکت به ساده بگم نه چندین تا چند شرکت خاصه به این شرکت ها شرکت های ها آمریکایی هستن شرکت های انگلیسی هستن و شرکت های آلمانی خب در شرایط تحریم تأمین تجهیزات قطعات دانش اصلا پذیر نیست برای اینا و این الان برای انسان داخلی من جمله شرکت ها. ما فرصت فرصت این تحریم راحت‌تر می‌تونیم بفروشیم توی یک محیطی که در حقیقت رقابت کرده می‌تونیم فروشمونو رو انجام بریم متوجه مذارم هم می‌شید؟ باید تحریم از نظر اقتصادی خب؟ ما یه تح... تحدیدی الان داریم یه تهدیدی داریم از نظر اقتصادی خب؟ تحت عنوان نقدینگی نقدینگی از نظر شرایط اقتصادی برای ما یک تهدید حساب میشه هر زمان نقدینگی تو کشور نیاد پایین چون مشتریان ما و مشتریان دولتی هستن تأثیر زیادی رو رو سازمان ما میذاره متوجه هستی؟ تأثیر میذاره از نظر فرهنگی این عامل نه تعدیده نه فرصت تو سازمان ما تکنولوژی عامل تکنولوژی نه تعدیده نه فرصت تو سازمان ما و خب؟ تأثیری نداره. عوامل جغرافیایی دموگرافیکی تأثیری تو سازمان ما نداره. پس از محیط عمومی، فقط عواملی که من روش دست بهش اقتصادی و سیاسی. بر تو محیط صنعتی پنج عامل تعیین کنندگار تو سیستم ما یک تهدید حساب میشه. تعیین کننده، خب؟ تحمیل کننده یه تحدیده چرا؟ به خاطر اینکه که من خدماتم و خب مجبورم از تحمیل کنندگان خاص بگیرم تعدادشون تو بازار کمه چون تعدادشون کمه هر سازی که میزنم به ساز اونها من برخصم خب و خود تحمیل کننده برای من شده یه تحدید مشتری فکر می کنی برای من تحدیدی با فرصته تحضی. تحضی. تحضی. مشتری, مشتری بر من تهدیده مشتریان من دولتی هست قدرت چانه زنی در مقابل سازمان من بالاست بالاست قدرت چانه زنی شون یه تهدیده من مشتری دولت. خب من الان مثلا فاکتور باز دارم با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دو میلیارد دو میلیارد خودی یک ساله یه ساله لیاقت ندارم تو چیکار می‌کنی هیچ کاری نمی‌تونی بکنی خب من قرار داد داشتن با یه مشتری دو سال پیش خب؟ با پالشتای عراق خب؟ خرید چهار تا توربین بود با توربین‌ها از برزی هم کردیم آوردیم که تحویل بدیم تحویل پالشتای عراق بدیم رئیس تدارکات عوض شد خب؟ عوض شد حالا من یارو این نفره که عوض شد ارتباطی با چین داشت با هند داشت نمیدونم وقتی این شرکت تأخیر تو تحویل داشته قرارداد فسخ متوجه ما میریم رو از چین میخریم برمیداریم یا قرارداد رو فسخ کن فاطمه گفت بیصوز بیصبرش تأخیر که ما داشتیم چون من شما بگم تا علامی که من دارم با شما صحبت می‌کنم دو سالو نیم از این قضیه گذاشته و این قضیه هنوز حل نشده توربینا تو دست من پولش رو دادم به بفروشم میخوا بگم پس مشتری اوتومتیکی برای من و برای سازمان من یک تقدیت حساب میشه مشتری خب؟ اوتومتیشت ایدناستان ها؟ حجم رقابت آمده بعدی برای من تقدیدی یا فرصته؟ برای من فرصته حجم رقابت چون تو سرعتی که ما داریم تولید کالا و خدمات میکنیم و اصلا کلن های تک داریم تولید میکنیم حجم رقابت سنگین نیست حجم رقابت سبکه تعداد رقباای کمی که الان با ما دارن رقابت میکنن تو این حوزه. پس رقابت برای من یک فرصت حساب میشه. رقابت یک فرصته. متوجه هستید؟ موانع ورود به بازار عامل بعدی بود دیگه تو محیط صنعتی. موانع ورود به بازار تو صنعتی که من الان دارم تولید کالا و خدمات میکنم بالاست. یعنی چی؟ بگه هر شرکتی راحت نمیتونه بیاد سرمایه گذاری کنه و نسبت به کاری که من دارم انجام میدم اقدام بکنه فرص. یه پیشنیانس هایی میخواد، یه زیرساختی میخواد دارش میخواد، تجهیزات میخواد خب پس موانع ورود بازار برای من یک فرصه متوجه میشید داستانم موانع ورود به بازار یا فرصت، موارد غروب بازار برای سازمان من یک فرصت. کالا و خدمات جایگزین. فرصتی یا تهدید برای من فکر می‌کنید؟ آمال بعدی کالا و خدمات جایگزین بود دیگه. تو حوزه صنعتی، عامل آخر. تهدید. چرا تهدید؟ چرا؟ چرا فرصت؟ تهدید داره که میتونن کار شما جایگزین بکنن. که بس اینکه کار من کالای جایگزین. چی بزارم. کار من مثل نیست. ببین اپل وماد آیفون داد بیرون، سامسونگ، اوماد گالکسی نوتو داد بیرون. این همه جایگزین، این همه جایگزین لپتاپه ولی سونی خب؟ تو تلفنیکیشک کالای جایگزین خیلی زیاده. این تحدي تو تو تلفنیکی. تو آموزش خیلی زیاده. متوجه و ولی من الان تور دارم تولید میکنم راهی دیگه دیدی بیاد بگه آه که مثلا من سلام نمیدم. یه جلسه دیگه میدم. که نیاز من شد؟ کنه. من تقدیل تقدمان کالا یا خدمات رو ندارم بس کهالا یا خدمات رو برای من میشه؟ فرصدی جایگزین خب، من صد تا فرصد الان دارم چهار تا فرصد و چند تا تهدید ست وزن سخت بود تفکی کردنش؟ ندارم متوجه داستان چیه؟ مرحله بعد بعد دو تا ستون اینجا گذاشتم وزن و درجه اهمیت مزاره میخوام وزن و میزان تحصیل میزان واکنش خب؟ برای تحقیدم هم به همین صورته برای تحقیدم ما یه وزن داریم یه میزان واکنش داریم برویم داستان اینا چی برای این شما فرصت ها و تحقیلاتی که نمشه حالا به هر کدومش باید وزن بدین خب؟ importance level بدی، درجه اهمیت بدی مجموع وزناهی که میدی باید یک باشه یعنی صد باشه متوجه هستی؟ مجموع وزناهی که میدی باید صد باشه یا یک باشه مثلا اینو ما خودمو تعییم می کنیم که تحیم چند درصد برای من اهمیت داره مقانه مورد به بازار چند درصد دار اهمیت داره خب؟ دقت بکنید. تحریم، آمل در جهامیتش برای من پنجاه درستنه خب؟ پنجاه درستن، پنج دهم، درسته؟ رقابت، یک دهم در درستان در من در جهامیت داره موانه، بازار در حدود سه دهم برای من در جهامیت داره سی درستن و کالای جایگزین، یک دهم این چند شد؟ پنج دمام ها، یه, دمام سه دمام یه دمام. چقدر میشه مجموعش؟ یک میشه یک، درسته؟ خب؟ همین داستان رو برای تحدیداتا مشخص می نقدینگی، به عنوان یه تحدید درجه اهمیت چرا داره درصد خب؟ تعمی کننده، یه در مشتری 20 درست خب. داستان چی شد؟ نکته بسیار مهم، استبلیغوتی رو کسی باید انجام بده که رسمت به سازمان حس داره. مدیر هر مدیر مدیر و بازاریابی بخواه دارم من خیلی سری درستدار رو مشخص میکنم میدونم، سیستم سازمانه سازمان رو خب؟ برحله بعدی بعض من دادم، حالا میخواه امتیاز بدم نیزار باخونش، تأثیری که تو سازمان من میذاره از یک تا چهار میخواه نمره بدم تخمین چقدر تو سازمان من تاثیر میذاره هرچقدر تاثیر بیشتری بذاره عدد بالاتری را کنگه هرچقدر تاثیر کمتری بذاره عدد کمتری رو میگیره تحریح تو سازمان من تاثیر بسیار بالایی را داره از یک تا چهار میخوام نمره بدم من نمره چهار را بهش میدم درسته؟ این نمره، صفت در این نمره میشه یه نمره نهایی میده چهار، صفت در پنجده هم میشه، میشه دو رقابت رقابت من رقابت رو آره تأثیر بسیار زیاری تو بس سازمان من داره عدد چهار رو بهش میدم چهار زندن یه دخون میشه چهار دخون ورود وروند بازار. عدد بالای بهش میدم تأثیر سیاه داره ولی خیلی زیاد نه عدد سه رو بهش میدم خب کاره جایگزی تأثیرش زیاد بالاست ولی زیاد نیست عدد دو رو بهش میده از یک تا چهار خب؟ نمره نهایی رو مطالبش چی شد. مجموعه این نمره ها این پایین نقشته میشه سه و نیم سه و نیم داری؟ ببینید نمره نهای چند تا شد چهار تا دویه برای چهار تا همه برای دو دهم مساویس با؟ سه و نیم, سه و نیم چی؟ سونی یعنی چی؟ یعنی فرصت‌های من از چهار سه نمره بهش داده آره، قد اکثر شما با کنش از یک تا چهار فرصت فرصت‌های من از عدد چهار سه یعنی خوبه دیگه درست یا نه؟ خب؟ به سران تحقیقات خب نقدینگی تامی کننده مشتری از یک تا چهار میخوام نمره بدم تو تهدیدات برعکس فرصته یعنی چی یعنی هر چقدر تهدیدات تاثیر بیشتری داشته باشه از یک تا چهار نمره پایینتری رو من میدم تاثیر کمتری داشته باشه نمره بالاترین رو میدم برعکس خب مثال نقدینگی عنوان یک تهدید تاثیر بسیار زیادی رو سازمان من میذاره تهدید خیلی بدیه تهدید بدیه از یک تا چهار که نمره بشه بدم. یه میشو. من یک بهش میدم درست؟ دامیتورندگان تهدید بادیه ولی خیلی مثلا نقدی نیست از یک تا چهار نمره بده دو تا سه بهش میدم مثلا دو بهش میدم خب؟ <تصفيق> مشتری <تصفيق> یک تا چهار اینم عدله بالاییه دو بهش میدم خب؟ این نیزان با سب در از میشه یه نمره نهایی میده باشه این نمره نهایی جمع میشه، درسته؟ چقدر عددی میده؟ یک و سه دهم نکته، تقدیدات من چجوری داستانش؟ یک و سه دهمه، خب؟ بینی یک منم؟ نسبتاً زیاده اگه تقدیدات من بیومن به سمت سجار بکنه بله به سمت یک اومنه، تقدیدات منم زیاده فرصتای من چقدر شد؟ 3 درست درسته؟ هم تعدیلات من شد؟ ایفتر. یک و 3 دهان دوتا عدد چند میشه؟ خب؟ متوجه شدی دو چیه؟ تحلیل محیط بیرونی من 2-4 دهان از 4 عدد من تحلیل محیط بیرونی من 2-4 از داشته باشید عدد رو داشته ما با یه عدد کار بریم ها. این عدد ها داشته باشیم عدد ها به دست نمیره باش کار چیزی این میانگینه این عدد و این عدد میانگین چی چه چهار هشته چه چه ها چهاره هشتم تقسی مردوم چید دور چهار دارم دیگه آه. من بختم میان گیر این دوتار رو در نظر بگیرید میان گیر چیکار کنم من؟ این گلوب رو در رو بابا؟ عدد عدد باش نیاز اد... نیاز دا دارم داخل محیط داخلی سازمان درسته نه؟ محیط داخلی سازمان برای چی بود؟ برای SW strength weakness تحبیل محیط داخلی این محیط خارجیه این محیط خارجیه دقت کنیم من در محیط داخلی خودم نقاط قوت و نقاط ضعف دارم تو شش فرایه هم نقاط قوت ضعف سازمان ها بنیمیسم نقطه که سازمان من داره نقاط قوتی که سازمان من داره یک تخصص و مهارت پرسنل درسته؟ این نقطه قوت خب نقطه قوت دوم نگارش مدیریت و من عالم استراتژیک هستم علمی به غذای نگاه میکنم؟ نقطه قوت سوم نقطه قوت سوم. تخصص و مهارت پرسونل نگارش مدیریت حقوق و دست مزد بالا. حقوق و دستبوز باید تو هایت <صح>. <صح> نه بگید به من الا چی؟ نه الان هایت اوکی؟ کلیر شد الان سه تا رو من نوشتم تو گل سازمانم پرخصاز و پرسونه نگرش مدیری هم. اون با دست بالا یا به دیگر هم تحت عنوان عنوانه برند برند قدیم دو نقطه قبطه درسته؟ نقطه ضعف زرف. نقاط ضعفی که سازمان من داره یک تجهیزات فرسوده خب تجهیزات فرسوده نقطه زفر افرد درسته؟ نقطه زفر دوبام نبدی نگیر مشکل نقدینگی نگیر درسته؟ نقطه زفر ثبام بفکر کنم بیرانی بودن کار دو در بازن <تصفح> من اینجوری دو در بازن نقطه زبه سر نقطه زبه چهارم تعداد تصمیم گیرندگان زیاد. تعداد تعداد تضمین که در سازمان ما وجود داره تعدادش خیلی زیاده. خب این چهار تا مختصر نمیشتم. برم وز بدم اینا. تخصص و مهارت پرسنل از وزن بالایی 5 دهم، نگارش مدیریت 3 دهم، ده حقوق و دستمزد بالا 500 مم می‌ذارم، مهم نیست زیاد. حقوق بالا حالا من در ادامه صحبت ها خطبت رو خواهد گفت که حقوق بالا زیاد تاثیر آنچنانی روی راندمان و غیر نخواهد داشت خب برند ردی 15 صدا مجموع چند شد؟ یک درسته؟ خب تجهیزات فرسوده دو خب؟ نقدینگی 6 ایرانی بودن 15 صد تقدام تصمیم گیرندگان 500 این چقدر شد؟ میک. یک حالا میزان واکنش با, با من تخصص و مهارت پرسنل از یک تا چهار میخوام نمره بدم چقدر تاثیر میذاره؟ تاثیر بالا میذاره تو سیستم ها چهار شوه. نیمش مدیریت چقدر تاثیر میداره؟ سه هوفت از مز بالا از یک تا جا چهار چهار میخوام بدم؟ یک میدم بهش ف خب. برند قدی از یک تا چهار چه نمره میدم چهار میدم خیلی مهمه درسته؟ این اعداد صرف این چه نمره نهایی جمع شدت شد نقاط قوت من سه پونج پنج پنج از چهاره سماریم از چهاره اوکی؟ از اینجا هیچ ملوم نیست بیا بشین <تصفح> خدا بکیدی پاشو پاشو, بیجارب. پاشو بیجارب. بیا جاله بیا شما میبینی؟ بیش میبینی رو یا برایتش بیشتر ما من برای کسیاره پردرم بخواید به ولی منم باز بزرگ میکنم اوکی؟ الان اوکیه؟ جمعه, جمعه. اوکیه الان؟ بله مرسی بازم بزرگتم؟ بله خوبه؟ خوبه، عالیه خوب کنم؟ خوبه. بازم بزرکتر؟ خوبه، خوب، الان تخصص مهارت نگرش مدیریت، حقوق، دستموز، متوجه هستیم و برند نبی اوکی؟ این عدال، زب در این نهایی به صد بسید هم اگر بعدا بذاری ببینیم الان نیمزه مجموعه شد سه و پنجا پنج بریم سراغ نقاط زب هر چیز این نمره نوایی چقدر میشه؟ سه و پنجا سو پنج, و پنج, این سو پنج, و پنج. نقطه زف هم نه خب بریم سنوان نقطه زف آ. بریم نقطه زف خیلی کار داریم نقطه تجهیزات فرسوده وزنش دو دمامه از یک تا چهار من بخواهم این نقطه زف، نقطه زف مهمیه نمره یک بهش میدم. خب؟ نقطه زف دوم نقدی نگی. خیلی مهمه نمره یک, یک. یک بهش میدم. بعدی ایرانی بودن حالا مهم از فری زیاد نه از یک تا چهار نمره سه بهش میدم. خب؟ نقطه نمره ولی تعداد تصمیم گیرنده من زیاد مهمه ولی زیاد نه از یک تا چهار نمره چهار بهش بیدم خب جمع شد یک و چلا پنج درسته؟ جانم خب چندش بیدم یک و پنج درسته؟ آف اوکی یاد کنید کنیم درسته؟ نه این دوتا چرا میشه دونی؟ دونی؟ برای که بتونیم وضعیت شرکت برای برنامه ریزی بدونیم ماتریس بعدی تحت حتی ماتریس یا ماتریس مکنسی جی ماتریس جیگی یا ماتریس مکنسی ماتریس جی, ماتریس مکنسی. ماتریس جی چیه؟ دوستان! ماترسه جی ایک ماترسه نوکت سلولیه خو یه ماترسه نوکت سلولیه ماترسه جی ای خو نوکتا سلول داره درسته این مالفه عوامل داخلیه این معرفه عوامل خارجیه یک دو سه چهار یک دو سه چهار خب یادداشت کنید سازمان ها سه نوع برنامه اساسی و کلامه میتونن داشته باشن همه سازمان ها توضیح میدن و یاد داشت میکنن سازمان ها بر اساس وضعیتشون بر اساس شرایطشون میتونن برنامه های رشد و توسعه داشته باشند یعنی توسعه بدن سازمان ها رشد بدن سازمان ها سازمان اون میتونن برنامه کاهش داشته باشن یعنی سربازا رو میام چیک کاهش کنم چه اساس درشو رو اینم یه برنامه است متوجه هستی یا سربازان اون میتونن برنامه ثبات داشته باشن نه کاهش بدن نه بدن یه وضعیت ثابتی رو نگهدارن ماتریس جی ای. سه تا سلول اولو رو خب میگه برنامه‌ای که اینجا اتخاذ میشه برنامه‌های کاهش کاهش کاهش کاهش خب برنامه که اینجا اتخاذ میشه یعنی در این سطح سلول برنامه های ثبات صبات و صبات و برنامههایی که تو این تا سلول اتخاذ میشه برنامه های رشته. رشد رشد و رشد حالا ما استابیلیوتی رو انجام دادیم این دو تا عدد به دست آوردیم که بدونیم وضعیت سازمانمون تو این ماتریس کجاست و بر اساس اون وضعیت دوید برنامه هامون رو تنظیم بکنیم اگر شما وضعیت تو اینجا باشه تو قسمت قرمز چه حالتیه؟ یعنی سازمان عبامه داخلی ضعیفه. نقاط ضعفش، قوتش می چرده، عوامل بیرونی ضعیفه، یعنی تهدیداتش رو فرصتاش خون این سازمان، سازمانی که وضعیتش وضعیت بزیعت مناسبی نیست، پس سرمایه‌گذاری نه تنها انجام بشه، برنامه‌ریزی کاهش هم باید داشته باشه. بعد بر سراغ کاهش. کاهش فعالیت فرآیند نیروی انسانی بازار محصول خدمات. چه باشه اگه سازمانی که وضعیتش اینجا باشه، اینجا این نقطه. توجه می‌کنی در شبد ببنده. باشه شرکت هر یه قدر تاسیس می‌ره شاتان بکنه بیزنسشو در سازمان به بنده وضعیتش اونجاست یه موقع وضعیت شما تو ثباته یعنی آقا یه وقت اینجا است اجاسی یعنی چی این سلول این سلول یعنی چی اینجا یعنی عوامل خارجی خیلی خوبه فرصت‌هایی هست ولی عوامل داخلی خوب نیست یعنی هایی داریم توی عادت ما بگیم داشته باش نرمشت کن نکاحب وضعیت ثابت رو نگه دار. اگه بیست تا میلوی انسانی داری همون بیست تا رو نگه دار سرکنی هتونی عمل کنی نسیخ بسوزه نمی خب؟ نمیدونی... نمیتونه بکنه فرصت هست و این نقطه زفت داره باید فرصت استفاده بکنم بعد برد این دیگه که با... من رو فرانگرارفت من شما میگم بله مسلمم بل من حرکت بکنم رو به جلو خب یه موقع از وضعیت شما اینجاست اینجا یعنی چی؟ <تصفيق> رو به روش یعنی محیط بیونیت و عبامل محیط داخلی متبسطه اینجا ثباته یه موقع از وضعیت شما یعنی عوامل داخلی خوبه نقاط قوت خیلی خوبه داری ولی عوامل خارجی خوبه یعنی های زیادی تو سازمان شما وجود داره اینجا ما میگیم ثبات نگهدار ولی یه موقع از وضعیت شما سبز سبز یعنی چی یعنی رشد. یعنی هم نقاط قوتت خوبه هم فرصتا خوبه زمانی که محیط داخلی قوی و محیط خارجی تام یعنی اینجا میتونی رشد کنی متوجه تو شرکت من که من استبلی او انجام دادم اوتی تی چنده؟ دو چهار دمان، درسته؟ تقریباً اینجا میشه، ها؟ درسته؟ استبلیو چنده؟ دونی درسته؟ این دوتا نفته به کجا با میرسه؟ <تصفح> <تصفح> یعنی وضعیت سازمان من، موقعیت سازمان من، موقعیت, سازمان من، موقعیت صوباته صوبات رو من دیگه دارم نه رشد بدم نه کاهجی وزیف موجود رو بدم بر اساس تحلیلی که از طریق استبلیوتی من انجام دارم سوات انجام دادم. متوجه شده داستانو؟ اگر شما تو شرکت خودت رو هم میتونید انجام بدید به این استبلیوتی کنی تو ماتریس مکنزی بریزید و ببینید وضیعتتون وضعیت رشد صوباته یا قاهشه این میشه تا این برنامه برای سازمان شما که آیا برنامه سبد داشته باشی، روش داشته باشی یا کاهش داشته باشی. متوجه داستان چیه؟ کلیه؟ بله. این خیلی مهمه ها. ما بهش منزله اوتی رو اگه درست انجام ندی بدبختی. نه وقت درست انجام بده خیلی مهمه. خیلی مهمه. حسین الان اینجا شما تو سازمان خودتون تو حالتی سوار هستی برای رشد که اصلا هم بخوای بخواید پیش برید فقط یه دعوام داخلی یه دعوام داخلی یه دعوام خارجی من یکی تقییب دید؟ نه میشه، ببینید شما فرصت ها و تحدیداتی داری خب مثلا یه تحدید دارید تحت دو امان نقدی نگید کارش نمیتونی بکنید ولی تحدیراتی توی سازمان خودت میتونی اعمال بکنی که اون تا بتون کنترلाइज بکنون، قنسا بکنید. متوجه هستید ولی واقعیتی که وجود داره، وضعیت سازمان است ثباته. هایی که من برای سازمان میخوام بچینم، باید بر اساس صبات باشه. یعنی من رشد سود نباید داشته باشم، افزایش درآمد نباید داشته باشه، نفسش نکوهش. متوجه هستید؟ افزایش تجهیزات سرانگزاری نباید داشته باشم، ثبات ثابت دارم. افضایش نیروی انسانی نباید داشته باشم میدونیم یه خط مستقیمان تا چند سان آیده بعد دیگرم مگرم که همین تغییر بکنه میدونی وضعیت الان من نقدینگی را تحدید گذاشتم چون اصلا سال آرگانده پنجه بلده احتواب کنم تبدیل به فرصت این مهمترین افضایر که شما در دوره ای ام بی ای می من یه کلیاتی را خدمتتون گفتم من که دوره ام یه دو تا سابجکت تایید می‌خوام نه این به طور زحمت اول گفتم نه کلا دو تا سابجکت من تایید می‌کنم یه مدیریت ساختار سازمانی مدیریت استراتژیک حالا ان شاء الله در درس مدیریت استراتژیک من قشنگ براتون کالبو چکافی می‌کنم حالا اگر من خودم خواستم تایید کنم مدیریت استراتژیک می‌کنم معمولا مدیریت استراتژیک تایید خب بچه‌ها ما هم کسیلا درس اینم برای اون چی نه، اینا همه در پلتفرمه درس مدیریت استراتژیک درس خیلی کلیدی و اساسی این ها رو ما درس مدیریت استراتژیک تکمیلش بکنیم ببین من خواهشی که دارم شما تو دوره ام دو تا 3 تا درس اهمیت بدید یکی مالی و حسابداری و مدیریت استراتژیک این دو تا خیلی مهمه حالا اینو ما تو مدیریت استراتژیک واسه می‌کنیم که کلیاتی از برنامه ریزیم شدیم ادامه بدیم از وظایف مدیرات اولویت داشته و مقدم بعد آنها میباشن تحقیق اهداف سازمانی مستلزم برنامه ریزی. شما با برنامه ریزی که در حقیقت میدونی سازمان رو به کدوم سمت باید بره و به کدوم سمت نمایت بره راهبارها رو میدونیم بله برنامه ریزی چیزی نیست جز تفکر منظم در آینده در مورد آینده این ما شکل داره میدیم به تفکرمون، به تحقیلمون در سطح صاحبانی شکلی داره میدیم برنامه عبارت است از تعین هدف و پیشبینی راه رسیدن به آن در واقع آن نوعی تحقیل دردهای فعالیت برای تحقق هدف به شما می آید برنابه ریزی عبارت هست تصور و تراحی وضعیت وقت و پیشبینی راه و مسائلی که نهیم به آن را مایستر می‌سازن برنامه‌تی در حقیقت حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب است دوستان پنج آمله جلسه گذشته من خیلی من تو گفتم برنامه‌ریزی مهمه چرا مهمه؟ چرا اهمیت داره؟ چون برنامه‌ریزی وقتی شما تنظیم بکنید فعالیتاتو احتمال اینکه که به هدف درسید باقلاده افزایش پیدا میکنه تطبیق سازمان با تغییرات محیطی جلسه پیش سال گفتم برای بله برنامه‌ریزی بعد محیط رو تحلیل کنیم محیط بیرونی و درونی سازمان رو تا تحلیل کنیم که ما انجام داریم خب افزایش کارایی و, کارای و منفعت اقتصادی از طریق مفهوم صرفه ساختن عملیات معیا ساختن ابزاری برای کنترل و تقویت روحیه کار نیروی با برنامه ریزی در سازمان شما انگیزش هم در سطح سازمان افزایش در برنامه که سازمان ها داشته باشد باعث میشه پرسنل انگیزه تر، انگیزش رو افزش کنه برنامه ریزی باعث تقویت انگیزه در سازمان میشه خب. اولین گام در برنومه گل ستینگه گل ستینگ هدف کذاریم هدف یعنی چی؟ هدف یعنی چی؟ من اینجا رو من مدیریت داره از که بارده این نظریه شد سه تا کانسپت داریم گل، آبژکتیو تارگت اینا رو تو دیکشنه میگونی همشت من هدف پیدا میکنه برست نه؟ آه؟ ولی تو مدیریت این سه تا ما هم فرق میکنیم گول آبژکتیو تارگت چی یک چه فرقش آ؟ كيف هدف جول. خوب یه هدف بلند مدته. گل یه هدف بلند مدته. یه دیستیเนشنه، مقصدی که ما میخواییم برسیم. خوب؟ آبجکتیو. نه، به خب جهت رسیدن به هدف خب توضیح هم میدم پاکت عدد بذاری یعنی چی؟ من یه هدف کلی در سازمانم دارم گول من یه گولی در سازمانم دارم دوستا به نام رضایتمندی مشتریان رضایتمندی مشتریان یه گولی در سازمانم دارم به نام رضایتمندی مشتریان من میخوام مشتریان راضی داشته باشم گل خب؟ من، خب، اجکتیویم من، اجکتیویم من رضایتمندی مشتری چیجی اندزیگی میشه تو سازمان بهتره شما. آ، مخوام اندازه گیری کنم دیگه؟ اتجرپسیت میشه دحوه مجرمند من اندازه کنم چش را دازی کنم رضایت من دی مشتریان چند تا تا یک شو با خود مشتری و نه نه یه فرمول بدیم نحقی اندینه فرمول میخوایم بهش بدیم خب اوکی دی. این چه فرمولیه؟ مثلا تعداد مشتریانی که خرید مجدد دارن درسته؟ نه. تقسیم بر کل تعداد مشتریانی که خرید مجدد دارن تقسیم بر کل مشتریان درسته؟ بیرون هنوز چیزی بود دیگه؟ این میشه اینش آبجکتیوئه اینش آبجکتیوئه خب فورگتس تارگت عدد گذار ببینم میخوام بکنم عدد گذاری بکنم تارگت میخوام عدد گذاری بکنم درسته 1393 1394 1395 1393 تارگت من اینه که 80 درصد راضی باشم متوجه هستی 94 90 درصد و نمید و پنج مثلا تارگت ما اینه که هشتاد درصد نمید و صد درصد و چهار و ست درصد نمید و پنج رازی گل، آبژپی و تارگت ما برای برنامه ریزی دوستان، در سطح سازمان خب. درستان. درستان. درستان. ما در سطح سازمان باید گل ستین داشته باشیم. یعنی هدف گزاری داشته باشیم. این پلیه اولی. چون زیاده کلی رو ازیاد کنه. بشین کلی اونجا. بشین اونجا. بزن جلو بشین. آره جلو بشین. دوستان اهدافی دوست که شما دارید انتخاب میکنید، گل‌هایی که دارید انتخاب میکنید، این مشخص ها رو داشته باشه. یک مجر تی بر باش قابلیت اندازه‌گیری اندازه گیری ما وقتی رضایت منگی مشتری اندازه گیر همتونکنه دیگه میگه چطور مشتری که خرید مجدد انجام میدن شخصیم برای گد مشتریان. دو با بدییت دست یا بی این باید برسی وقتی من میگم رضایت منده مشتره 80% داشته 90% داشته 100% باید بهش ما برسیم شما acceptability داشته باشه acceptability یعنی موشت. آبا قبل قبل باشه از نظر سازمان confirmity سازگاری داشته باشه با فلسفه سازمان و نکلی نو... آخر opportunity cost هزینه فرصت هزینه فرصت چیه؟ هزینه فرصاد یعنی که اگه مثلا یک پروشه رو ما بخواییم دو تا پروشه اگه داشته باشیم ما میتونیم یه نونش رو استفاده کنیم و روش کار کنیم و اون یکی رو عکس میدیم به اون هزینه هم رو از اهدافی رو باید ما انتخاب کنیم که با به وجود آمدن ارزش افسوده برای سازمان بشود متوجه هستی؟ چون اگر در شبد علکی ما هزینه می‌ذاریم انرژی می‌کنیم ولی به هدفمون نمیرسیم. بیشترین ارزش داشته باشه چی بیشتر؟ ارزش داشته باشه. واسه حزینه فرصت شاید پروژه دو تا مختلف شد راسته هم ارزش داشته باشه ولی بیشتر مسالماً بیشتری و بیترین دیگه چون اگر از شرف کمی داشته باشه نداشته باشه از این فرصته برای سازمان زیره فرصته خب انبای برنامه ها دوستان برنامه ها در سازمان نیست که کتا مدت میاد مدت یا بلند مدت باشه بر اساس زمان خب؟ یعنی چی؟ برنامه کوتاه مدت برنامه میان مدت و برنامه بلند مدت باشه برنامه کوتاه مدت کمتر از یک سال برنامه میان مدت، بین یک سال تا سه سال. نه برنامه برمادت پیش از سه سال سوال مثال نزدن از برنامه کوتاه مدت برنامه کتا مدت مثل؟ مثل چی؟ شیش آینده آه؟ شیش آینده برنامه که مثل چی؟ مثلا عملیاتی بزنی. بزنی. فروش برنامه, برنامه مثلا فروش درسته؟ برنامه فروش برنامه تولید برنامه فروش و تولید رو برنامه کتاه مدت به میشه درسته؟ برنامه می مدت چی؟ یک سال تا سه سال سایش بازار ها؟ هفته سمده بازار افضایش سخم بازار. بازار دیگه دیگه، برنامه های می یک سال تا سه سال، چی؟ تبلیغات برو تو بازر جوانی بورس بورسه بازار باید باشه بازار. بازار برنامه بلند مدت بیش از 3 سال چی میتونه باشه مثال بزنیم. برنامه بلند مدد برنامه بلند برنامه توسعه زیرساختها. مثال ها نسالها. یا برنامه توسعه تجهیزات. آخر؟؟ آخر اوکی اوکی حالا گفتم برنامه ها میتونه کوتا کوتاهتر و بلند مدت باشه برنامه ها میتونه نسبتا داخلی یا ثابت یا موقت باشه برنامه ثابت مثل چه برنامه موقت مثل چی در سازما بله برنامه ها میتونه ثابت باشه در سازمانش شما یه برنامه ثابت داریم یا میتونه موقت باشه یک بار مصرف باشه مثلا تولید فروشم هم برنامه ثابت بذاری بله برنامه فروش و برنامه تولید برنامه بازار یا بجز برنامه ثابت سازگار همیشه داره برنامه های یک بار مصرف نسی چی؟ مثل وارجنان خواست اندازه یک پروژه خواست در سطح سازمان و تحبیل به مشتری در این خصوص برنامه ها میتونه راه بردی استراتیجی به عملیات اجرایی باشه سوالی که من جلسه گذشته گرم رو درست نه؟ سوالاتو که داشته؟ یه چهار پنج سوال اون یه سوال تفاوت برنامه استراتژیک بود دیگه درست نه؟ برنامه ریزی فرق استراتژی و برنامه چیست؟ همین دیگه برنامه میتونه عملیاتی بودی؟ سوال شما تفاوت استراتژی و برنامه یعنی برنامی عملیاتی برنامه اجازه بدید ما یک کانسپت داریم به نام استراتژیک یه کان برنامه‌ریزی درسته این دو تا کانسپت کلی برنامه ریزی و استراتژیک جفتش به معنی حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوبه ولی خب فرق می‌کنه استراتژیک فرق بکنه الان شما میشه فهمید میشه استراتژیک دقت کنید استراتژی برنامه بهش راه بردی میگن یعنی میگه یعنی فوارن رو بهش برنامه عملیاتی هم میگن تاکتیکی تفاوت اولا برنامه ای که برای رسیدن به اهداف بلند مدته بله توسعه بازار افزایش سهم بازار ورود به بازارهای جهانی توسعه تخصیز این استراتژیکه. اینا اینا برنامه راپوردیه. بردیه خب؟ باید برنامه فروش، برنامه توری فج بندی، جذب نیروی انسانی. اینا برنامه های عملیاتی تکنیکیه. پس استراتژیک برای مدت برنامه ریزی، اطلاع مدت استراتژیک برای سطوح عالی سازمانه برنامه ریزی برای سطوح میانی بر پایین سازمان یعنی استراتژیک که کی درگیرش میشه؟ مدیریت عرشد سازمان مدیریت عالی یا مدیریت روی یک و این های عملیاتی رو ستورم میانی مدیران و سرپرستان درگیرش میشن درسته؟ آآ فرق خیلی مهم محیط بیرونی مثل عوامل سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی، فرهنگی، جغرافی، دموگرافیک. تعمیم کننده مشتری، حجم رقابت، موانع ورود به بازار و کار و خدماته جای بودین یازده آمل محیط بیرونی روی برگماه های شما تاثیر میذاره درسته؟ تاثیر میگذارن، تاثیر مستقیم میگذارن ولی محیط بیرونی تحصیل زیادی روی برگماه عملیاتی نداره دکته بعدی برنامه استراتژیک ریسک خیلی بالا داره برنامه عملیاتی ریسکش پایله یعنی چی؟ آقا اگر تو تو برنامه بازار یا به نامعفق باشید یا تو برنامه تولید نامعفق باشید یا سایت برای سازمان داره ولی اگر تو توسعه بازار برنامه تکشیزان توسعه تکشیزان نامعفق باشید سازمان ممکنه با سر بخوره زمین بر مثال آخر فرروچه برنامه های استراتژیک اثربخشی خرروچه برنامه های فروش بزن به ها برنامه های کاراییه. یعنی شااپز های اثربخشی فیونس که من جلسه قبل گفتم ارتباط مستقیم با برنامه های استراتژیک داره و شااپ های ارتباط زیادی با برنامه های عملیاتی داره متوجه هستید یعنی کاررو شاپز اثربخشی یا کارایی آ؟ کارایی کارایی آراهای اثر بخشی یک سازمان من قدمتش میتونه می اثر بخشی باشه این ارتباط با برنامه استراتژیک داره بازگشت خوبیش. سرمایه خیلی کلانه. و این میزان هم نیزان طولید. یه شاخص کارایی اثر بخشی کاراییه خب؟ ارتباط با؟ برنامه عملیاتی تفاوت برنامه ایزی با استراتژیک مطبطی شده مدیریت استراتژیک و؟ مدیریت برنامه یا برنامه راه بردی، برنامه عملیاتی آخری چی بگیم؟ ترکید شده فرمان شما برنامه ها میتونه هدایتی باشه؟ برنامه ها میتونه محیلی باشه؟ با منید برنامه ها میتونه هدایتی باشه برنامه ها میتونه معین باشه برنامه هدایتی چه برنامه معین برنامه هدایت برنامه میتونه به بگید میتونم برنامه هدایتی برای کاربر معین نمی جوی قراره انجام ما توی فرایند مدیریت چند فانکشن داریم؟ پنج فانکشن، درسته چی بود؟ تصمیم گیری، برنامه ریزی، هدایت، کنترل، هدایت، یه فانشن مهمه توی مدیریت دقت کنید ما در سازمان چند تحلیل داریم؟ دو نه تحمیل، درست یا نه؟ تحمیل، ادراکی، و؟ تحلیل فنی درسته؟ تحلیل فنی مانه کیه؟ مدیران عملیاتی میانی تحلیل ادراکی مانه کیه؟ مدیران ارشد متوجه هستید؟ ما میگیم مدیران ارشد باید نقشه هدایتی داشته باشد و مدیران میانی باید نقشه ما عیم داشته باشد یعنی چی؟ مدیر عرشد بد حس بده دو سازمان مدیر عرشد بد شطرنج بازی بکنه با سازمان مدیر عرشد بد فکر کنه، تحلیل کنه مدیر عرشد نود خودشو درگیری یک سری مستندات و چارچوب های خاص دو سازمان بکنه مدیر عرشد ریسک بکنه متوجه هستی؟ مدیر عرشد باید یه جا داد بزنه یه جا بخنده مدیر احشاپد به گونه‌ای عمل کنه که پرسنل نصفه منه چیه میدونه چی دارم میگن مدیر احشا نباید خیلی رو بازی کنه مدیر احشا باید تحلیل اجرائی فکری داشته باشه مدیر احشا باید تفکر استراتژیک داشته باشه تفکر تحلیلی و خطی داشته باشه ببین متوجه شدید اینو ما بهش میگیم برنامه هدایتی این نو تفکرات و برنامه‌هایی که از طرف مدیر مدیرعشى در سطح سازمان تزو میشه برنامه هدایتی خب ولی مدیر میانی مدیر میانی در سطح سازمان باید نقشه در حقیقت فنی رو بازی کنه بر اساس یک سری به مشخص عمل بکنه ما مدیران اولیاتی نمیدیم بیشتر از تحلیل فنی داشته باشن تا دا تحلیل اتراکی باید بیشتر خطی عمل کنند تا غیر خطی اوکی؟ مطمئن داستان چی شد؟ خب یک تعیین چشمنداز و رسالت درسته؟ پله اول شما تو سازمان باید چشمنداز و رسالت رو تحقیم بکنه دیگه، درست یا نه؟ چشمانداز و رسالت مرحله بعدی انجام استویوتی درسته؟ انجام استویوتی، برای چی؟ برای اینکه وصلیت، سازمان تو تعیین رو مشخص بکنی مرحله بعدی برنامه ریزی درست میگم؟ آنو که کلیت در مجموع در کل به چند قسم تقسیم میشه در کل به چند قسم تقسیم میشه در کل چهار سه قسمی بود اونم دیگه نه نه در طول اونمای گفتین کوتاه‌مدت میان اون در کل عبور بر اساس زمان اومد تقسیم کردیم که انگار گفتین استراتژیک راهبردی عملیاتی بر اساس فلسفه بر برنامه‌ریزی در حالت کلی به سه قسمته رشد رشد و توسعه درسته؟ صبات و کاهش و کاهش تقسیم بنده میشه انگلیسیش رو میتونه رشد و توسعه رو میگن صبات رو میگن کاهش رو میگن پس این پله اول تعیین چشمنداز رسالت انجام استبلیوتی و برنامه ریزی که حالت رشد و ثباتو و داره درسته و مرحله بعدی از فرایند برنامه ریزی اجرا درسته؟ و مرحله آخر ارزیابی این سیکلو مدنظرتون باشه باز ما در بحث در درست مدیریت استراتژیک اینو بازش میکنیم که ما تعینه چشم انداز رسالت داریم انجام سؤال، برنامه ریزی، اجرا و اصیابی با اون انجام می توفر می دارد و وقتی سوات انجام می دید و انجام شده؟ آه نه، اه، سوات آه. آه، آه. یعنی تحقیل سازمان وضعیت سازمان فره برنامه می ریزیم ارزیاده یعنی وقتی برنامهان اجراشه حالا می کنترل کنترول بکنیم بسنگی اثر بخش بوده، نبوند اوکی بوده یا نه آه. از ابعاد مختلف برای سازمان مهمه ما از نظر موضوع برنامه های مختلفی در سطح سازمان داریم به نام تولید، بازاریابی، تحقیق دوسته، تحمیل نیوی انسان و غیر و خب؟ از نظر سطح برنامه ریزی، بعضی از برنامه های ما مثل استراتژیک، خب؟ برنامه های کردیه، بعضی از برنامه عملیاتی و تاکتیکیه اوکی؟ برنامه بعد نیتونه مدت یا مدت و بلند مدت باشه نوع برنامه بعض این ارتباط با بیانیه معمولیت و راهبرد و داره این برنامه رو بهش برنامه های و یه موقع ارتباط با بودجه و غلش های اجرایی داره که اینو میگن برنامه‌های برنامه های عملیاتی تکتیکی برنامه در سازمان متوجه میتونه خاص باشه، ساده یا پیچیده برنامه میتونه رسمی یا غیر رسمی باشه برنامه میتونه کتبی یا شفایی باشه اوکی؟ برنامه میتونه عمومی یا مهرمانه کمی یا کیفی باشه سوال سوال هرچقدر از پایین سازمان به بالای سازمان ما حلکت میکنیم برنامه ما ساده‌تر میشه یا پیچیده‌تر میشه دمشونتر. آره پیچیده, پیچیده تر میشه یعنی چی یعنی برنامه راه بردی تر میشه هرچه از پایین سازمان به بالای سازمان حرکت میکنیم برنامه رسمی تر میشه یا غیررسمی تر میشه نه غیررسمی میشه نه, نه هرچه از پایین سازمان به بالای سازمان شما میری برنامه چی میشه غیررسمی تر میشه یا غیر خرطی تر میشه مدیریت هرشان سازمان برای برنامه یا تسکنگیری غیروجان نباید بکنه به روش اجرای دستورالعمل ها آن چیزی که در سازمان وجود داره بیدید. بر اساس تحلیل غیرخطی خودش، تفکر خودش، تحلیل خودش و از انسان برنامه ریزی اوکی؟ <تصفيق> خلید پنج عدد کامپیوتر تنف و پذیری محصولات استخدام مدیر بازاریابی به موقع پروژهها و توصیح تجهیزات. دوباره قبعای بابادم توصیح ترچیزات تحویل موقع پروژه ها استخدام مدیر بازاریابی تنف و پذیری محصولات قرید پنج عدد کامپیوتر اوکی؟ این فعالیت هاست به من میگید کدومش راه کدومش هست؟ اولیش عملیتیه، این موضوعیش راه, راه, راه استخدام بازار نه، چرا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> به موقع پروژه هم عملی است. تجهیزات هم عملی است. چرت و از یأس نه، نه، <تصفح> دوستان، برو سراغ زمان زمان زمان. توسعه تجهیزات کوتاه‌مدت اتفاق میفته، بلند مدت. به موقع پروژه. دو تا مدر اتفاق یا بلند مدر؟ بستگی رو کن رو داره کجا میشه؟ داره ها؟ بله ده دوتاش میشه ده هر دوتاش میشه, هر دو تاش میشه. باشو باشو باشو. استخدام مونی وازاریابی دوستان خرید پنج عدد کامپیوتر آخه پنج عدد کامپیوتر دیگه برنامه میخواد؟ بابا خب واقعا متأسفم میشه 5 دقیقه چک هم نیست. ما یه آیتم دیگه داریم داشت کنیم. من به خاطر این انجینیرم، به نام کوی فیکس. دیدی میدونی؟ برنامه خیلی کوتاه بود. اصلاً برنامه نیست. آبرو براتش کامته بخم بعدو بیا. بستم. یا مثلا مدیر بازاریابی با رو بوام تغییر که نظام جذبش می‌کنه دیگه. میدونی یعنی است. آره، نداره. فلیل پنج عدد کامپیوتر کویک فیکسه استخدام مدیر مازداریابی در سازبان کویک فیکسه اوکی و پذیری محصولات راه راه بردیه ایتون تو متنبه کنیم تو یه محصول داری چولید می کنید تبدیلش به چار, پنج نو محصول مختلف برای بازارهای مختلف این میشه شون <تص> همین مهمه در یه خیلی مهمه هم استخدام مدر بازاری های آخه یه استخدام نیره بازاری ها یه میدونید استخدام مدر بازاری باید ماشخاص های استخدام رو برنامه نمیخواد، گارس نمیخواد میدونید یه توی کویت البته خیلی نزدیک کویک فیکس و برامه عملیاتی خیلی نزدیکه ولی خب خرید پنج عدد کامپیوتر بس اینا کویک فیکسه استخدام آبدار فیکس کویک فیکسه میدونیشون استخدام مجیر استخدام مهندگز، کارشناس، کارمند و این موقع بحث توزه بگیر منابعی انسانی رو داری وفاداری رو در نوری انسانی داری؟ یس، یار رایت اون موقع مثلا میتونه حتی برنامه را نیداره چی میخوام بگم؟ نه برنامه تاکتیکی این کانسپت رو متبطی شده وقتی میگه برنامه راه بردی برنامه عملیاتی گویی فیکس اینا چه تفاوتی که سوالی هست؟ خب یه سوال اینه که مفته گودشه مطرح کرده بوده ها بگون دیگه مکنی بالسطرکشور او منی بسطرکشور خب دیگه مدام موری، مورا مودا. خودمون <تصوح> در راستای تغییر و در تغییر و خب اوکی ما رو سرکار نروشتین. <تصوح> <تصوح> سرچ کردین یه چیزای عجیب و غریب اومد. <تصوح> <تصوح> من حدوسین. ساختار مو مکانیک. خب مکان بعده سازماندهیه که ما بحث سازماندهی رو تو بحث سازماندهی بوارده بحث ساختار میشیم یه مقدار اینجا کار داریم با هم یه مقدار اینجا ما کار داریم البته شما باز این درس رو تو در بحث مدیریت استراتژی کامنتار بخونید برای باز یه مقدار من زمان بیشتری اینجا میذارم تو بحث ساختار ما تو بحث ساختار سازمانی مباحثی که مد نظرمونه اصلا سازماندهی چیه تو مدیریت لازمه به اعتقاد شما؟ آ. ولی میخوام بگم یه حدی بعد کنترل باشه یه هم اگه بیش از اندازه شما در سازمانتون سازماندهی بکنید میدون یعنی چی؟ یعنی آقا تو شعر وظایف تو اینه تو اینه تو اینه تو دی خوبه هر کس با خود شعر وظایف داشته باشه خوب یاده نه خوبه تمام میشه یه خوبه، ولی بیش از اندازش بده این میدینی چرا؟ یه موزنی تو سازمان <تصفيق> به وجود میاد به نام الائنیشن یعنی از خود بیگانگی میگه آقا تو مدیر بازاریابی هست شهر غذایفت اینه بعد فردانش مثلا یه کار دیگه انجام بده این شهر غذایفت؟ آقا این شهر من من نمی اونجا میخوایی اون گردگی رو پرتش کنی بیرون این کانسفت الائنیشن به وجود میاد حالا، ما یه بحث میکنیم سازمانده یه مقداری باید حتی باشه ما تحسین کار بحث فلسفه شرح بضایف و شرح شو. که با من یه سال دیگه بود که مطلب کردم دید من بودتارم اینا رو کار کرده باشید متوقع جرسید؟ و بحث همهنگی در سطح سازمان و روندهای جدید در سازماندهی ما توی یه وزمن بحث ساختارهای ارگانیک و مکانیک فلک و تار بحث توانمندسازی شعب S.O.C. چیه در سازمان S.Pan up کنترل، انواع چارت سازمانی که در سازمان ها میتونه وجود داشته باشه رو تو این بحش با هم بحث میکنیم سوالی هست؟ یه چند میتونیم سرعت کنیم؟ خوبه توش کنیم رو؟ نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، اصلا تو قبلش قبل اینکه حالا بعد از استرات بی شهرت وظایف شغل رو بریم که یعنی نیا. قبلش بردی من... بهتون میده ساعت 18 نه بابا هفته رو نه نه بابا با Bu journal at der adam sorba zar batırırsın. Oke. Benim o da. Yani biraz ileri rolan ki aslan sen nasıl? Rol alacağız.